عزیزان به کلاس دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. کلاسی که به مطالعه کل کتاب مقدس از ابتدا تا انتها اختصاص یافته، تقریبا به نیمه های کتاب مقدس رسیدیم. حالا در کتاب مزامیر بخشش هدیه حیرت انگیزیه که خداوند خدا به ما عطا میکنه. امروز از مزامیر دعایی رو خواهیم خوند که در اونها داوود از بخشش خداوند لذت میبره اون بخشش در دست من و شما هم هست حالا بیایید به دقت به درس امروز گوش کنیم خوشا به حال کسی که اسیان او آمرزیده شده و گناه وی مستور گردید خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد و در روح او هیله ای نمیباشد هنگامی که خاموش میبودم استخوان هایم پوسیده میشد از نعرهی که تمامی روز می زدم چون که دست تو روز و شب بر من سنگین می بود رتوبتم به خشکی تابستان مبدل گردید سلاح به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم گفتم اسیان خود را نزد خداوند اقرار می کنم پس تو آلایش گناهم را عفو کردی سلاح از این هر مقدسی در وقت اجابت نزد تو دعا خواهد کرد وقتی که آبهای بسیار به سیلان آید هرگز بدون نخواهد رسید تو مل جای من هستی مرا از تنگی حفظ خواهی کرد مرا به سرودهای نجات احاطه خواهی نمود صلاح تو را حکمت خواهم آموخت و به راهی که باید رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر تو است نصیحت خواهم فرمود مثل اسب و قاطر بی فهم مباشید باشید که آنها را برای بستن به دهنه و لگام زینت می دهند و ایلا نزدیک تو نخواهند آمد. ضمن بررسی کتاب مزامیر در عهد قدیم به مزمور سی رسیدیم. ما برخی از مزامیر مرد برکت آفته را مطالعه کردیم و حالا به بررسی مزامیر دعایی رسیدیم. دیدیم که مزامیر مرد برکت یافته پیام هستند و مزمور در مورد خدا با انسان حرف می زنه. مزامیر دعایی غالباً مزامیر احساسی و تجربی هستند و گفتیم که بهترین راه روی کرد به این مزامیر اونجایی که مزمور نویس با خدا در مورد انسان حرف میزنه و دعا میکنه، اینه که حال و هوای احساسی او رو در موقع دعا ملاحظه کنید. اگر شما خودتون رو در چنین حال و هوایی یافتید همراه با مزمور نویس تفکر و تعمل کنید تا ببینید او برای خروج از این وضعیت چه کارهایی کرده؟ مخصوصا اگر احساسات او با احساسات شما متضاد هست در مزمور سی و دو و پنجاه و و چندین مزمور دیگه حال و هوای احساسی طوری هست که همه ما با اون آشنا هستیم احساس تقصیر یا حس گناه در مزمور سی و دو داوود به ما با شرحی زیبا میگه که علائم جسمانی احساس گناه چی هستند داوود از خیانت بدبختی و ناکامی حرف میزنه و از قدرتش که مانند رطوبت در تابستان به خشکی مبدل گردیده صحبت میکنه او از یک تجربه خوش سالی روحانی صحبت میکنه وقتی که ما انبیا رو بررسی میکنیم این تیپ تشبیهات رو زیاد میبینیم عجیب ما میگه که به خاطر ناطاعت ما آسمان ها از شبدم باز داشته می شود و زمین از محصولش باز داشته میگردد و خداوند میگه من بر زمین و بر کوها و بر قله و عسیر انگور و روغن زیتون و بر آنچه زمین می رویاند و بر انسان و بهایم و تمامی مشقتهای دستها خوشسالی را خواندم به این دلیل که قوم خدا خوشسالی روحانی رو در سفر روحانیشون تجربه میکنند. احساس گناه حسی که مزمور نویس در مزمور سی با اون برخورد میکنه. وقتی که کتاب اول و دوم سموئیل رو بررسی میکردیم، دیدیم که گناه میتونه یک احساس منفی در ما به وجود بیاره و سلامتی ما رو تحت تأثیر قرار بده. اگر شما گناه کردید، درستی هایی هم دارید. شما معیارهای نیکوکاری رو دارید، اما با اون معیارها سنجیده نمیشید. دو روش برای برخورد با این حس تقصیر هست. راه حل دنیایی میگه چیزی به نام ادالت و نیکوکاری وجود نداره. پس لازم نیست که احساس تقصیر کنی. راه حل کتاب مقدسی میگه چیزی به نام حس تقصیر وجود داره و راه حلی برای اون هست و راه حل اون اعتراف هست. داوود اینجا به سالهایی که بعد از گناه زنا با بتشبه و کشتن شوهر او اوریا در لاک خود فرو رفته بود واکنش نشون میده. وقتی که به زندگی نامه داود نگاه می کردیم، گفتیم که تمام اون یک سال شاید فلاکت بارترین سال زندگی داوود بوده. وقتی که ناتان نبی با داوود روبرو شد، او به جایی رسید که تصمیم گرفت به گناه خودش اعتراف کنه. در مزمور سی داوود حال و هوای احساسی خودش رو قبل و بعد از توبه شرح میده. او میگه عجب شادی، عجب آرامشی. با این کلمات داوود برکت بخششی رو که به دنبال اعتراف به گناهانش اومده شرح میده. از کجا میدونید که گناهان شما آمرزیده شده؟ بعضیا میگن اینطوری میتونید بدونید. کتاب مقدس اینطور میگه: من اونو باور باور میکنم که بخشیده شدم. این واقعیت داره. برعکسش هم صادقه. کتاب مقدس میگه: و اگر شما شک بکنید، بخششی در کار نخواهد بود. شما وعده خدا رو دارید چون در کلامش اینو گفته: اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را میآمرزد و از هر نادرستی حاکمان میسازد. شما این رو میدونید چون کتاب مقدس اینو گفته به هر حال شما از اینجا هم میتونید بفهمید گناهانتون آمرزیده شده وقتی که چیزی رو تجربه می کنید که داوود در مزمور 32 شرط داده که برکت بخشش هست وقتی گناهان شما ناپدید شدن شما از اینجا میدونید که گناهانتون بخشیده شدن چون احساس شادی و آرامش می کنید تبدیل آثار مخرب احساس گناه به برکت بخشش یک معامله روحانی هست که همه ما باید مشتاق باشیم که با خدا انجام بدیم. در مزمور 32 داوود چنین مبادله روحانی رو با خدا شرح میده. داوود به ما نشون میده که با حال و هوای احساسی حس گناه چیکار کنیم. چمدان شخصی گناهانتون رو با خودتون به مزمور 32 بیارید. اون رو اونجا رها کنید و با شادی و برکت بخشش خدا از اونجا بیرون بیاید. مزمور نوزده یک مزمور دعایی دیگه هست و از سه پاراگراف تشکیل شده خدا حقیقت رو به طرق مختلف به ما نشون میده اولا اون حقیقت رو به وسیله طبیعت به ما نشون میده و در پاراگراف اول مزمور نوزده داوود میگه که آسمان خدا رو موعظه میکنه و محتوای معزه اش جلال خداونده او میگه آسمان جلال خدا رو بیان میکنه و فلک از عمل دستهاش خبر میده روز سخن میراند تا روز و شب معرفت را اعلان می کند. سخن نیست و کلامی نی و آواز آنها شنیده نمی شود. قانون آنها در تمام جهان بیرون رفت و بیان آنها تا اقصای ربع مسکون خیمهی برای آفتاب در آنها قرار داد و او مثل داماد از هجله خود بیرون می‌آید و مثل پهلوان از دویدن در میدان شادی می‌کند. خروجش از کرانه آسمان است و مدارش تا به دیگر و هیچ چیز از حرارتش مستور نیست. به عنوان یک شبان، داوود شبهای زیادی رو بر روی زمین دراز کشیده و به ستارگان خیره شده و در خداوند تعمل کرده که توسط اجرام آسمانی برو آشکار شده. اون ده از ما که در شهرهای پرنور زندگی می توجه چندانی به ستاره ها اگر شما هم مثل من به جاهای دور افتاده مسافرت کنید احتمالا یکی از چیزهایی که شما را تحت تأثیر قرار میده زیبایی ستارگان هست. از اون که هیچ نوری نیست که مانع دیدن ستارگان بشه، شما واقعا میتونید ستارگان رو ببینید. در مزمور 19 داوود به ما میگه وقتی که اون میرفته به خوابه، اون اجرام آسمانی برای او موعظه میکردند و متن موعظه اونها جلال خدا بود. فضایی که دور اون اجرام سماوی رو احاطه کرده بود برای داوود موعظه میکنه و متن موعظه اون لایتناهی بودن خدا است. پاراگراف دوم کلام خدا را از کتاب مقدس برای انسان شرح میده. الهیدانان پیغام خدا توسط طبیعت رو مکاشفه طبیعی میخونند و پیغام خدا از طریق کتاب مقدس رو مکاشفه خاص میگن. کتاب مقدس مکاشفه خاص خدا برای انسانها هست. کتاب مقدس وقتی جماوری شد یک معجزه بود که ابتدا و انتهایی نداشت. در پاراگراف دوم مزمور 19 داوود چیزهای زیبایی در مورد کتاب مقدس میگه. داوود به ما میگه که کتاب مقدس کامله. کتاب مقدس قطعیه. کتاب مقدس درسته. کتاب مقدس خالص و حقیقیه. داود همینطور به ما میگه که کتاب مقدس میتونه در زندگی ما کار بکنه. داوود به ما میگه کتاب مقدس میتونه چشمان ما رو روشن کنه، قلب ما رو شاد کنه و به ما حکمت و فهم بده و از همه مهمتر میگه که کتاب مقدس میتونه جان ما رو تبدیل کنه. پاراگراف دوم مزمور 19 از آنچه که کلام خدا هست و آنچه که میتونه در زندگی منو و شما انجام بده دیدگاهی کلی به ما میده. در پاراگراف پایانی این مزمور داوود به ما نشون میده که چرا این مزمور به عنوان مزمور دعایی طبقه بندی شده. در حالی که داوود به پشت خوابیده و به اجرام سماوی خیره شده، افکارش متوجه درون خودش میشه و دعا میکنه و میگه کیست که سحوهای خود را بداند مرا از خطایای مخفیم طاهر ساز بنده را نیز از اعمال متکبرانه بازدار تا بر من مسلط نشود آنگاه بی عیب و از گناه عظیم مبرا خواهم بود بعد او این دعا را میکنه که برای اکثر ما آشنا است او میگه سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشد ای خداوند که صخره من و نجات دهنده من هستی این دعا رو که داوود در انتهای مزمور 19 کرده در رابطه با بقیه مزمور ملاحظه کنید وقتی این کار رو بکنید میفهمید که داوود چنین چیزی میگه خدایا پیغام تو توسط طبیعت با شکوه و زیباست خدایا پیغام تو توسط کلامت کامل اون یک معجزه است و قطعا کامله کتاب مقدس نه تنها یک مکاشفه هست، بلکه کلام تو قدرت عظیمی داره و میتونه به طور خارق العاده ای در زندگی های ما تأثیر بذاره کلام تو میتونه جان انسان رو تبدیل کنه و چشمان او رو, رو روشن کنه و به او حکمت بده خدایا مکاشفه ی تو توسط کلامت خارق العاده است بعد میفهمید که دعای داوود در پایان مزامیر اینه خدایا پس مکاشفه ات توسط من چیه ما شاید بتونیم سؤال داوود رو اینطور تفسیر کنیم. ما با زندگی که می کنیم و با کارهایی که می کنیم و با چیزهایی که می گیم هر روزه بخشی از انجیل رو می نویسیم. مردم چیزهایی رو که شما می نویسید می خونن. خواه از روی بی باشه یا حقیقت و میگند به نظر تو انجیل چیه؟ خدا به های مختلفی حقیقت رو نشون میده. خدا توسط طبیعت حقیقت رو نشون داده، توسط کلامش حقیقت رو نشون داده و همینطور میخواد توسط من و شما حقیقت رو به این دنیا نشون بده من و شما تنها کتاب مقدسایی هستیم که احتمالا مردم خواهند خون پولس رسول هم دقیقا به این اشاره میکنه وقتی می نویسه ما رساله هایی هستیم که همه اونها رو می شناسند و می خونن. ما احتمالا تنها کتاب مقدسایی هستیم که مردم خوندن وقتی اونها زندگی من و شما رو می چه جور کتاب مقدسی رو می خونن؟ این جوهر دعای داوود در آخر مزمور 19 هست و دعا میکنه خدایا وقتی من به زیبایی پیغام تو توسط طبیعت و به کمال پیغامت توسط کتاب مقدس فکر میکنم خدایا پیغامت رو توسط من نشون بده که چی میتونه باشه بگذار که تفكرات قلب من و کلمات دهان من و مکاشفه تو توسط زندگی من در نظر تو مقبول باشه مزمور 73 یک مزمور دعایی دیگه هست که حال و هوای احساسی رو به تصویر میکشه. مزمور 73 توسط داوود نوشته نشده، بلکه توسط مردی به نام آصاف نوشته شده. آصاف به ما میگه که به موفقیت شریران حسادت کرده و در ادالت خدا شک کرده. پس مشکل احساسی آساف شک و حسادت هست. وقتی ما کتاب ایوب رو مطالعه میکردیم و همین طور سی دلیل کتاب مقدسی که چرا خدا اجازه میده قومش رنج بکشن، دیدیم که خدا اجازه میده که قومش رنج بکشن. وقتی خدا به مقدسان خودش رنج میده به اونها فیض میده که از عهده رنجهاشون بر بیان. خدا توسط اون مقدسینی که رنج میکشند به تمام دنیا پیغام میده. وقتی شما یک مرد یا یک زن ایمان هستید، خدا از طریق شما باسم هم همین کار رو میکنه. خدا قلبهای دردمند مقدسین رو تبدیل به شمع‌دانهایی میکنه. که به این وسیله اونها تبدیل به نور جهان میشن مقدسینی که در رنج هستند خودشون رو مانند شمعهای سوزان تحلیل میبرند تا اینکه بتونند جلال خدا را با رنج به دنیا نشون بدن ایمان آوردن به این معنی نیست که آسمان آبی و یا علفها سبز تر خواهند شد و یا پرندگان دل تر خواهند خوان تصمیم گرفتن بر اینکه مرد و زن خدا ترس و با ایمانی باشید شاید نتیجه معکوس داشته باشه و منتهی به مشکلات زیادی بشه. خدا شاید میخواد که به دنیا نشون بده درون این ظرف خاکی چه گنجینه هایی داره و این زیربنایی هست که بر روی اون خانه‌ای بنا میشه که نماد زندگی شماست. راه آشکار خدا برای نشون دادن اون زیربنا یا گنجینه شما اینه که اجازه میده فشارها بر اون ظرف خاکی وارد بشه و اجازه میده که طوفان ها بر اون خانه بیاد. آساف این قاعده رو دوست نداشت. آساف گفت: من به این مردمان شریر نگاه می کنم و میگه اونها هرگز مشکلی ندارند. اونها کامیاب هستند و هر چیز رو میخوان دارند. در حالی که من هر روزه مشکل دارم. طوفان ها یکی پس از دیگری در زندگی من میآوند و میرند. آساف اعتراف میکنه و میگه که این منو قطعا دلسرد و معیوس میکنه. من جرئت ندارم که مشکلاتم رو با کسی در میون بذارم. چون دوست ندارم قوم خدا رو برنجونم، چون تفکر کردم که این را بفهمم در نظر من دشوار آمد. اگر دهانم رو باز کنم، به قوم خدا خیانت کردم، چون که اونها به من نگاه می کنند تا سرمشقی برای اونها باشم. بنابراین جرعت نمی کنم شک رو با اونها در میون بذارم. آصاف در ادامه میگه این شک ها تمام توان مرا گرفته تا اینکه به قدس های خدا داخل شدم. آنگاه در آخرت ایشان تعمل کردن. بنابرای گفته آساف ما نمیتونیم با رفتن به دانشکده شکهای خودمون رو برطرف کنیم. ما میتونیم با وارد شدن به قدسهای خدا و ملاقات با او شکهای رو برطرف کنیم. دانشکده جایی نبود که مشکلات آساف رو حل کنه. برای حل مشکلات الهیاتی و یا بنای خودتون باید به قدسهای خدا وارد بشید. وقتی شما مشکلاتی مثل آساف دارید، لازمه که جایی برید که آساف رفت او به قدسای خدا داخل شد وقتی که آساف مشکلاتش رو به قدسای خدا آورد خدا اجازه داد که او چند دقیقه‌ای در جهنم توقف کنه من فکر می‌کنم که این راه خوبی برای شرح تجربیات او هست چون که آساف میگه در قدسای خدا او عاقبت شریران رو دید خدا سفره‌ی ضیافت عواقب شریران رو که در انتهای زندگیشون خواهند داشت به آساف داد. کتاب مقدس به کررات میگه راههایی هستند که به نظر انسان درست هستند اما عاقبت اون راهها مرگ و هلاکت هست. پایان زندگی و طرز زندگی و ارزشهای شریران رو ملاحظه کنید این رو میتونیم به این صورت هم بگیم که اگر من و شما بتونیم پنج دقیقه در جهنم بمونیم این باعث میشه که ما مبشر بشیم اگه من و شما پنج دقیقه در جهنم بمونیم احتمالا یک چادر بزرگ با رخت خواب و یک تریلی میگیریم و دور کشور راه میافتیم و بشارت میدیم و سعی میکنیم به هر کسی بگیم که در جهنم چی دیدیم میخوام شما را به چالش وادارم. اگر خدا برای من و شما امکانی فراهم کنه که پنج دقیقه در آسمان و پنج دقیقه در جهنم وقت بگذرونیم کدوم پنج دقیقه میتونه بیشترین تاثیر رو در زندگی شما بذاره این چیزیه که باید بهش فکر کنید در مزمور 73 خدا به مردی به نام آساف اجازه میده که پنج دقیقه در جهنم بمونه و اون تجربه رفتار آصاف رو نسبت به شریران عوض میکنه و او را از یک دشمن حتمی به یک آدم دلسوز و شفیق نسبت به اونها تبدیل میکنه. من فکر می کنم اگر پنج دقیقه در آسمان وقت بگذرونیم اون پنج دقیقه یقینا تأثیری که پنج دقیقه وقت گذراندن در جهنم داشت نخواهد داشت. یک چنین چیزی برای آساف در مزمور 73 پیش آمد. وقتی آساف از قدسای خدا بیرون اومد، حال و هوای احساسی او عوض شد و مشکلات الهیاتی او حل شدند. آصاف با دشمنی شریران وارد قدسای خدا شد و وقتی که از اونجا خارج شد، وقت دلسوزی برای شریران دعا می کرد. تجربیات آساف در جهنم تأثیر عمیقی بر او داشت. بعد از اینکه خدا رو به بیعدالتی متهم کرد حالا میشنویم که میگه لا دل من تلخ شده بود و در اندرون خود دل ریش شده بودم من وحشی بودم و معرفت نداشتم و مثل بهایم نزد تو گردیدم ولی من دائما با تو هستم تو دست راست مرا کرده اید موافق رأی خود مرا هدایت خواهی نمود و بعد از این مرا به جلال خواهی رسانید به عبارت دیگه آساف میگه من به بهشت خواهم رفت و اون شریران به جهنم در حالی که با دلسوزی برای شریران دعا میکرد، آساف سؤال عمیقی پرسید. کیست برای من در آسمان غیر از تو و واضحه که جوابش هیچ کس هست. با توجه به ارزشهای ابدی، آساف بلافاصله به این نتیجه عمیق میرسه. هیچ چیز را در زمین نمیخواهم. بنا به گفته ی آساف، بزرگترین چیز در مورد آسمان اینه. خدا اونجاست. انگیزه ما هم باید مانند آساف برای رفتن به آسمان بودن با خدا باشه. به گفته آصاف مهمترین چیز در مورد آسمان خیابانهای طلایی نیست. آساف میگه چون خدا اونجا هست آسمان آسمانه. وقتی که بفهمید روزی سرنوشتتون تکمیل خواهد شد و به آسمان خواهید رفت و تمام ابدیت رو با خدا خواهید گذروند آیا این تاثیر عمیقی بر روی سیستم ارزشی زندگی شما در این دنیا نخواهد گذاشت؟ شما هم باید همسدا با آساف بگید خداوندا هیچ چیز در آسمان جز تو نیست چیزی نیست که من بر روی زمین مشتاقش باشم اولویت شماره یک که من بر روی زمین شناختن تو هست مزمور هفتادسه یک مزمور زیبای احساسی دعایی هست که در اون آصاف به ما نشون میده چطور با شک ها و حسادت ها مقابله کنیم او با نمونه خودش به ما نشون میده که باید مشکلات الهیاتی خودمون رو به قدس های خدا ببریم. این جایی هست که آصاف مشکلات الهیاتی خودش رو حل کرد. وقتی من دانشجو بودم مشکلات الهیاتی و عقلانی زیادی داشتم. بعد از سالها صحبت کردن با محققین و الهیدانان من اون مشکلات رو در قدس های تجربیات حل کردم، نه در یک متن دانشگاهی. حالا میخوام یک مزمور دعایی بزرگ دیگر رو بررسی کنیم. به نظر من مزمور 139 یکی از مزامیر بزرگ دعایی هست. مزمور 139 هم مانند مزمور 19 با یک دعا خاتمه پیدا میکنه که احتمالا شما با اون آشنا هستید. ای خدا مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس. مرا بیازما و های مرا بدان و ببین که آیا در من فساد هست؟ و را به طریق جاودانی هدایت فرما اون دعا مثل یک روانکاوی به نظر میرسه اما یک تفاوت عمده داره روانکاو مورد نظر داوود خدا هست داوود به خدا میگه ای روانکاو اعظم خدایا سرپوش قلب مرا بردار چون که من نمیدونم انگیزه های دل من چی هستند ارمیا در نبوت خودش میگه دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است کیست که آن را بداند؟ و جواب او اینه، فقط خدا. فقط خدا عمق شرارت قلب انسان رو میدونه و مهمتر از همه ارمیا گفته قلب فریبنده است. خیلی پول زیادی خرج میکنند و نزد روانکاف میرند فقط به خاطر اینکه قلبشون فریبنده است. دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض و کیست که آن را بداند؟ چون که دل اونها چیزهایی میگه که, که حقیقت ندارند و مجبور میشن به روانکاو مراجعه کنن و از او کمک بگیرن تا فریب کاری دلشون رو درمان کنن دل معمولا با انگیزه ها همکاری میکنه داوود به خدا میگه مطمئنم که انگیزه هایی در دل من هست که نباید باشه اونها رو به من نشون بده من میخوام با اونها مواجه بشم و از شر اونها خلاص بشم میخوام اونها رو اعتراف کنم چون که میخوام در راه ابدی گام بردارم داوود همینطور دعا میکنه خدایا سرپوش ذهن منو بردار چون که میدونم اونجا افکاری هست که در زمیر ناخودآگاه من حک شده که نباید اونجا باشه سرپوش افکارم رو بردار و افکاری که نباید اونجا باشه به من نشون بده من میخوام از اون افکار خلاص بشم چون میخوام در راه ابدی گام بردارم میتونیم به حال و هوای احساسی داوود اینجا شک به خود بگیم. چون داوود از افکار و انگیزه های خودش مطمئن نیست. همه ما شک به خودمون رو تجربه کردیم. شما با شک به خودتون چیکار میکنید؟ شما باید شک به خودتون رو به حضور خدا بیارید و بگید: خدایا، ای خدا، مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس. مرا ما و فکر های مرا بدان. به اعتقاد من کتاب مقدس این نوروان کاوی رو توصیه میکنه. اما من دوست دارم که در مورد درونگرایی کمی محتاط باشیم. درونگرایی روحانی بیش از حد میتونه نتیجه برعکس به بار بیاره. کتاب مقدس هرگز به این نوروانکاوی بسنده نمی کنه. این مهمه که زمینه این دعای داوود و زمینه دیگر دعاهای مزامی رو بدونیم. برای درک زمینه این دعاها باید برگردید و ببینید چه چیزی باعث هر کدوم از دعاها شده. مزمور 139 به سه پاراگراف تقسیم شده هر پاراگراف چیزی در مورد خدایی میگه که داوود در دعاهاش به او اشاره کرده مثلا پاراگراف اول به ما میگه که داوود نزد خدای دعا میکنه که او رو میشناسه به همین دلیل میگه ای خدا مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس اگر شما نزد یک روانشناس و مشاور برید اون روانکاف محدود به اطلاعاتی هست که شما به او میدید شما چقدر با او باز خواهید بود چقدر به او اطلاعات خواهید داد محدودیت او بسته به باز بودن شماست. مهم نیست که او چقدر در کار خودش ماهره. خدا گذشته اجتماعی شما رو میدونه چون او خدایی هست که شما رو میشناسه. او شما رو تماما میشناسه. داوود میگه تو نشستن و برخواستن مرا میدانی و فکرهای مرا از دور فهمیده ای. این چیزیه که ما از پاراگراف اول مزمور 139 یاد میگیریم. در پاراگراف دوم این مزمور می‌بینیم که داوود نزد خدای دعا میکنه که می‌دونه هرگز نمی‌تونه از او فرار کنه. او میگه از روح تو کجا بروم و از حضور تو کجا بگریزم؟ اگر به آسمان صعود کنم تو آنجا هستی و اگر در هاویه به سر اینک تو آنجا هستی. اگر بالهای سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم در آنجا نیز دست تو مرا رهبری خواهد نمود. و دست راست تو مرا خواهد گرفت و گفتم یقینا تاریکی مرا خواهد پوشانید که در حال شب گرداگرد من روشنایی گردید داوود نزد خدای دعا میکنه که هرگز نمیتونه از حضور او فرار کنه چیزهایی در زندگی هستند که نمیشه ازشون فرار کرد برای مثال شما نمیتونید از خودتون فرار کنید هر جا که برید خودتون همونجا هستید این حقیقت زندگیه وقتی من دانشکده میرفتم، رفتم به عنوان دستیار استاد کار می کردم. یک استاد فلسفه گاهگاهی شبها دیرتر میرفت و با هم بحثهای فلسفی می کردیم یک شب وقتی او پشت میزش اومد من گفتم او شما اونجا هستید و او گفت بله هر جا که برید شما اونجا هستید این اندیشه بسیار عمیق بود چون او منو میشناخت، این جواهر کوچک را به من هدیه کرد او گفت و هر جا که تصادفا قرار بگیری، با تمام وجودت سعی کن که تماما اونجا باشی این واقعیت زندگیه حقیقت اینه که شما نمیتونید از خودتون فرار کنید همونطور که نمیتونید از خودتون فرار کنید از شریر هم نمیتونید فرار کنید به همین دلیلی که پولس رسول گفته باید با اسلحه تام خدا مجهز بشید تا بتونید با شریر مبارزه کنید بهتره که در مقابل شریر موضع بگیرید چون نمیتونید از او فرار کنید حقیقت عمیقی که در مزمور 139 بر اون تمرکز شده اینه که شما نمیتونید از خدا فرار کنید. وقتی که در مورد یونس در کتاب انبیا میخونید، شاید به حال او تعصف بخورید چون که گفته شده یونس سعی کرد از حضور خدا فرار کنه. برای فرار از حضور خدا به چه سرعت باید فرار کنید؟ به چه مسافت دوری باید سفر کنید؟ چقدر بالا برید؟ چقدر پایین برید؟ داوود باهوشتر از یونس بود چون داوود میدونست که نمیشه از حضور خدا فرار کرد. در مزمور 139 داوود به این اشاره میکنه که نمیتونه از حضور خدا فرار کنه. وقتی که زمینه ی دعای داوود رو بررسی میکنید خواهید فهمید که داوود به خدای اشاره میکنه که او رو خلق کرده. اینجا یک آیه امیق در مزمور 139 هست. آیه 16 میگه چشمان تو جنین مرا دیده است و در دفتر تو همه اعضای من نوشته شده. در روزهایی که ساخته میشد وقتی که یکی از آنها وجود نداشت خلاصه و تفسیر اون آیه اینه که داوود یک چنین چیزی میگه در یک ژن کوچک که شما حتی نمیتونید با یک چشم غیر اون رو ببینید همه ما عوامل موروسیمون رو داریم که تعیین میکنه قدمون چقدر خواهد بود چطور راه خواهیم رفت چطور صحبت خواهیم کرد و بسیاری چیزهای دیگه این حیرت انگیزه که بدونید تمام صفات موروسی شما در اون ژن کوچک جمع شده که حتی نمیتونید بدون میکروسکوپ اون رو ببینید اما اینجا داوود فراتر از اون میره و میگه حتی قبل از اینکه به شکل اون ژن وجود داشته باشید خدا تمامی اعضای شما رو در دفتری ثبت کرده یک چنین چیزی به عنوان یک تصادف انسانی وجود نداره وقتی من به عنوان مددکار اجتماعی در یکی از محلات پر رفت و آمد شهر کار میکردم به یک راهب کاتولیک گفتم، پدر نیمی از این بچه ها که اینجا هستند تصادفی به دنیا آمدن و برای تولدشون برنامه ریزی نشده. همه اونها بچه ناخواسته هستند هستن. در حالی که با ملامت به من نگاه می کرد، گفت، مرد جوان، چنین چیزی نداریم که هیچ انسانی تصادفی به دنیا آمده باشه. من سرزنش شدم و تعلیم روحانی گرفتم که هرگز اون رو فراموش نمیکنم. این موضوع مال سالها پیشه ولی هنوز اون رو به خاطر میارم. بهش فکر کنید اگر خدا مشخصات هر انسانی رو حتی قبل از اینکه وجود داشته باشه در دفتری ثبت کرده پس آیا میتونیم بگیم که اینها تصادفی به دنیا آمدن؟ این استدلالی قدرتمند بر ضد سقط جنین هست. اگر خدا زندگی هر انسانی رو طراحی کرده آیا شما حق دارید که نقشه خدا رو خونسا کنید؟ آیا حق دارید کودکی رو بکشید؟ اگر خدا زندگی اون کودک رو حتی قبل از اینکه او وجود داشته باشه طراحی کرده؟ مزمور 139 آیه 16 به ما میگه که چنین چیزی نداریم که انسانی تصادفی به وجود اومده باشه. پاراگراف دیگر اینجا هست که به شما دیدگاه دیگری از دعای داوود رو میده. در انتهای مزمور دعایی هست که داوود به خدا به عنوان کسی اشاره میکنه که او رو حمایت میکنه. داوود به خدا اشاره میکنه که به او فکر میکنه. ای خدا مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس، مرا بیازما و فکرهای مرا بدان و ببین که آیا در من راه فساد هست؟ و مرا به طریقهای جاودانی هدایت فرما مهمه که بدونیم داوود در دعاش به خدایی اشاره میکنه که او رو میشناسه، خدایی که نمیتونه از حضورش فرار کنه، خدایی که او رو خلق کرده، خدایی که تمام روز به او فکر میکنه. داوود میگه ای خدا های تو نزد من چقدر گرامی است و جمله آنها چه عظیم است. اگر آنها را بشمارم از ریگ زیاده است. وقتی که بیدار میشوم هنوز نزد تو حاضر هستم و بالاخره داوود در دعاش به خدایی اشاره میکنه که او را محافظت میکنه. خطاب به این خدا هست که داوود در انتهای مزمور 139 این دعای بزرگ رو میکنه. کتاب مقدس به ما یاد میده که روانکاوی چیز خوبیه اما این رو هم به ما یاد میده که بهترین روانکاو خود خدا هست که میتونه ما رو روانکاوی کنه خدا بهترین روانکاو قدرتمند هست چون که خدا تمامی اطلاعات کامل در مورد ما رو داره اطلاعات او در مورد شما نامحدوده فلسفه به ما تعلیم میده و تشویق میکنه که خودمون رو بشناسیم اما ما خودمون رو نمیشناسیم پس اگر ما خودمون رو نمیشناسیم، اگر بخواهیم در زندگی هدایت بشیم باید نزد کی بریم بنا به گفته داوود اگر شما تجربه شک به خودتون رو داشتید اگر معتقد بودید که به کمک نیاز دارید یا به مداوای روحانی به حضور خدا بدید و بگید خدایا سرپوش قلب منو بردار و قلبم رو به من نشون بده خدایا سرپوش ذهنم رو بردار و افکاری که نباید اونجا باشه به من نشون بده چون من میخوام در راههای ابدی گام بردارم دعایی که مطالعه کردیم شباهت به روانکاوی هرفعی داره اما دو تفاوت اساسی با اون داره. اولیش اینه که دعا کردن خیلی ارزون و دومیش اینه که مشاور روانکاو در دعا کسیه که همه چیز رو میدونه و همه چی رو میبینه و خدای این جهانه. خدا نه تنها ذهن ما رو خلق کرده و افکار ما رو میدونه بلکه تمام پیچیدگی ها و ترس ها و ضعف هایی که میدونه میدونه که احساس تقصیر و شرم ساری شما فقط با اعتراف به گناهانتون میتونه حل بشه پاک بشه و شما رو احیا کنه قبل از اینکه جلسه رو تموم کنیم میخوام بپرسم آیا تا حالا قلب و ذهنتون رو برای خدا باز کردید و گفتید که خدا یا مرا تفتیش کن و به من نشون بده چی رو میخوای در من عوض کنی اگر نکردید این مزمور رو بخونید و این دعا رو در حضور خدا بکنید اون موقع او کار حیرت انگیزی در زندگی شما خواهد کرد در مزامیر ما دعاهایی رو میبینیم که مردان خدا وقتی در استراب بودند دعا کردن ما با آگاهی از اینکه خدا دعاهای ما رو میشنوه میتونیم آرامش پیدا کنیم اگر تا حالا به گناهانتون اعتراف نکردید و از خدا طلب بخشش نکردین امروز این کار بکنید. اگر چیزی هست که لازم اعتراف کنین نجاتتون رو تجربه کنین بدونید که خدا مشتاق و منتظر شنیدن از شماست. اون بخشش رو دریافت کنید و اون رو با دیگران در میون بذارین. تا برنامه بعدی امیدوارم فیض و آرامش او شما رو دلگرم و تقویت کنه.